اللهم صل على فاطمة وأبيها و بعلها و بنيها و المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم به مناسبت اربعین حسینی که در پیش داریم به چند کلمه درباره امام حسین علیه السلام صحبت کنیم و دنباله مطالب جریان حق حسینی یک جریان کاملا از روی علم و یقین است لذا هیچ یکی از افراد در انجام کار سعیشون شک و شبه ندارند. تا چه برسه به وسوسه و کسی رو شک. لذا هرگز از اصول ارزششون دست بر نمی دارن جریان حق حسینی افرادش که تا پای شهادت بودن و به شهادت رسیدن همه از سلامت جسم روان روح نور برخوردارن زیرا که علم طب یعنی ایجاد و یا تثبیت سلامت فرد و اجتماع و در صورت بیماری برگشت سلامت فردا اجتماعیم و معصوم علیه السلام طبیب العطباء پزشک پزشکان حتی در شیرخاری که متولد مدینه است به مکه با آقا جان مادر جانش میاد پشت دعوازهای کوفه تا بعد از زور آشورا علی اصغر امام حسین علیه السلام می‌بینید تا پای شاده کاملا سالمه من گشتم تو روایات شیعه و اهل تسنم. یک روایت بر بیماری نده با اینکه که قدیما ماشین و هواپیما از یه حرفا نبود نه تراخم چشم گرفته، نه آلرژی یا حساسیت گرفته، نه سرفه کرده، صرفه های یا سعم و یا آم یا کیپ بینی، یا پلیبینی بینی، یا عفونت سینوسال ها، یا آبسه مغزی ممانندو، مشکلات ریه مثل آسم کودکان یا برونشیت حاد ممانندو، بحث های, های ادراری یا دستگاه تناسلی ممانندو، بحث اگزمای پوستی یا سوختگی سختگی مانندو این یک درس کاربردیه برای پدر و عاقل که نسبت با اولادشون درست عمل کنن. زیرا هنر خانواده این است که همه چیز در خدمت مصالح عالی کودک باشد. زیرا که کودکان بزرگان آینده هستند. خواستم بگم این حضرت خانم رو با حضرت امام حسین علیه السلام قشنگ بلدن بچه داری رو حفظ کودک رو رشد مفید کودک رو ومانند این ها به ظلم ظالمین از حیث محاصره اقتصادی و محاصره نظامی که فرد یا افراد آسیب میبینن به خاطر حرکات ایزایی دشمن یا ظالمانه دشمنه نه اینکه که حرکات و سکناتشون از روی جهل و قفلت باشد نه کاملا از روی علم و یقینه. از امام حسین علیه السلام یاد میگینیم که با خدا صحبت کنیم زیرا که امام حسین علیه السلام صحبت با خدا رو دوست دارد یعنی نماز خاندن رو قرآن مجید استغفار اینا همه رو دوست داره. اهل نماز شب هم همچون زینب کبران آلمه غیر معلمه به ندا و درد دل خدای متعال به حضرت موسا گوش بدین خدای متعال به حظت موث میفرماید دروغ میگوید، گوید هر کسی که میگوید مرا دوست دارد و حال اینکه در شب مثل بقیه مردم میره به خواب عمیق و با من خدا صحبت نمیکنه. این فرمایش خدا به حضرت موساز و سیل شیه هفت صفحه هفتاد و هفت پس خواندن نماز شب یکی از دلیلهای دوستیه با خداست کذب من زعم أنه یحبنی فاذا جنه اللیل نام عنی دروغ میگوید هر کسی که گمان میکنه من خدا رو دوست داره وقتی که شب همه جا رو فرا میگیره و اکثریت مردم در همه جای دنیا تو خوابن اینم تخم میگیره میخوابه به قول مشدیا ها خواب عمیق ده خواب عمیق بعد به صورت پرسش و تعجب خدای متعال به حضرت موسی میفرماید الیسا کل محب یو و خلوت حبیبهی آیا این گونه نیست که هر محبی دوست دارد تنها باشد با حبیب خودش با محبوب خودش که چند کلمه با هم حرف بزنم اینایی که ازدواج قانونی شعری کردن که میدونن چی میگن تو سال عقد و ازدواج شعرید اصلا کار نداشتی به خونه مادرزن و پدرزن و قضا چی چیه شیشتونگ حواست به اون جیگر بود اون جیگر تلاب شیشتونگ حواستش به همین عسلک بود اصلا کار به زمان و مکان و در دیوار نداشت یه واقعیت هرکی ازدواج کرده میدونه من چی میگم اصلا آقا میخوام بالاتای دنیا عرف بزنیم قابل عرض لاتای قربشه پس خواهیم دو طرف قابع عینک دو تا این دوست پسر این دوست دختره. تو همون عالم الواتگریشون میگردن یه جای دنجی پیدا کنن با هم چرتپت حرف بزن. چون هیچ کنم از این وعده برای ایداشون وفا نمی ولی بازم یه جای دنج خلوتی میگردن که با هم حرف بزنن. قابل از همه لاتای دنیا. یعنی نعوذ به الله، نعوذ الله، نعوذ الله، یعنی خدا یه لط کمتره؟ آیا انسان ها نباید با خالقشون حرف بزنم؟ چطور ادعا میکنی؟ من میخوام به خدا برسم، خدا رو دوست دارم از این حرفا؟ پس چرا چند کلمه با خدا حرف نمیزنی؟ یعنی نماز نمیخونی؟ اگر آدم نماز بخونه جلوی خیلی از فسادها شب نشینی‌های مبتزل وابت عمومی ناسالم گرفته می شود. یکی از درسایی که ما از امام حسین از حضرت زینب می‌گیریم چیه خوب باش و خوب باقی بمان به, به شرط اینکه در گوشه زندگیت خدا باشم خدا در همه احوال در نظر بگیر بعد هر کسی هر پهن مثبتی داره خوش گم نکنه مثلا پول داره مثلا خیلی دانشمند و عالمینه چی همین دو کلمه کسب کردی خود گم میکنی دلخ میکنی با قولی مرشدی یا گرد خاک میکنی از امام حسین یاد بگیر فرازهای دعای عرفش نیا کنیم امام امام چقدر قشقی فرموده الهی انا الفقير في غنايه فكيف لا اكون فقيرا في فقري در اين حال كه من دارا هستم و ولی فقیر به پس چگونه از حال من كه در ناداری و فقر فقر نداشته باشم یعنی به دليل اولويت فقيرم و محتاج خودم الهی انال الجاهل فی علمی فكيف لا اکونو جهولا فی جهلی در این حال که با سوادم علم دارم علممم هم لدنیه همچون رسول الله میگم رب بزدنی علما. ولی در این حال نسبت به علم الهی نادانم و محتاج علم الهیم پس در ندانسته هم به طریق اولاد جاهلم این معصوم داره ایجوری با خدا حرف میزنه پس من و شما به عنوان دانشجو دانش آموز طلبه روحانی دکتر مهندس آیت الله هر کسی هر شغلی که شریفی که هست قشر متوسط اجتماع قشر پولدار اجتماع قشر ندارم فقیر اجتماع رو خط زیر خط فق فقر فق نمی جون تو پولداری و بی و کم پولی با سوادی و بی سوادی و کم سوادی و پر تو هر حالی که هستی هم چه گوینده چ شنونده همیشه محتاجم قنیه به ذاته که عالمه به ذاته همیشه محتاجی به ذات تو روایات شیعه داره میگه در این حال که کار خوبه سازنده داری و کار خوبت تا ادامه میدیم بازم دعای خیر کن که خدا بهت وسعت بده مثلا علمت علم نافع بشه مثلا رزقت واسع بشه و خیر رسانه به دیگران بشین حالا یه صلوات بفرستین ما من. اللهم صل علی محمد و محمد واجعل یکی از درسایی که ما از نهضت حسینی میگیریم اینه که امام حسین علیه السلام و هیچ نفر از بنی آچم مثل اول فضل عباس علی اکبر قاسم ابن الحسن عبدالله ابن الحسن حتی علی از امام حسین و همچنین بقیه بزرگوارا تو هر طراز سنی هستن مثل حبیب ابن مظایر الاسدی هشتاد سالم زهیر ابن قین و مانند اینها ها می بینیم هیچ کدومشون کمخون نبودن که سرگیجه ناشی از کم خونی بگیرن پس در مصافه با دشمنان خون سالم بدن سالم گردش خون صعیح ذریب هوشی بالا انجام کار صعیح با هوشیاری لازم دارای هدفمندی صعیح و هوشمندی دقیق بفهم الان ملت شریف ایران از عرب و عجم و همه تواف و یا منطقه خواهر میانه و مانند او اگر میخوان با ظالمین عالم مبارزه کنن سلامت فرد و اجتماع لازمه از دارا بودن خون سالم تمیز که وقتی که دشمن شناسیش کامل شد دشمن ستیزی میخواد انجام بده نیرو و توان لازم رو داشته باشه نه اینکه به قدعجاش بولنش سر گیجه بگیره دوواره سر بیفته رو زمین برای تولید خون سالم تمیز هر روز چارده عدد میوه رسیده اناب به اضافه عسل مخلوط کنه بخورد. برای تولید خون تازه و تولید مغز ساق پا درون قسمت توریای مغز استخوان برای تولید خون تازه ادم و طریق و تولید مغز ساق پا خوردن هر روز چهارده عدد با قلای آپز برای تولید آهن هموگلوبین گلوبولا و گویچه های قرمز خون و ازدیاد درصد اینا خوردن میوه هلو یا خشک آن قیسی زردالو یا خشک آن برگه زردالو یا کشتم و در بین غذا خوردن یک پرتقال، شیرین، از بابین، کاتالیزور مجاورتین که جذب آهن از این غذا بالا رود. یا مصرف بعد از غذا یک قاشق غذاخوری خوری شیره خورمان یا هفت عدد خرمای تازه یا خشک مصرف کنیم. بحثای فقر اگر کسی ضعف اعصاب دارد، کم خونی هم دارد، سردرد میگرنی هم دارد. یه بار زیک درمانی، توکل بر خدا، توسل به 14 معصوم. سوم صبحانه شیر می‌خوره با عسل. اصل. بعد عسلش رو عسل آبیشن میگذارد سردخشک پائیزیم اصل گوند می گذارد. تجمع مایات اضافی بافتیش یا مکوس یا بلغمش زیادم یا تو جبهه گاز خردل خورده اصل استخدوست می گذارد پس صبحانه یک لیمان شیر اصل اگر پوکی استخان یا بیماری استوپروز یا نرمی استخوان و ساق پا حالت پرانتزی شده یا راشیتیسم دارد اینجا یک لیوان شیرخورما می خورد اگر علاوه بر کمخونی دردهای مدام در قوس کمر دارد به نوع درد لنباگو با اینکه سیاتیک و همچنین دیسک ندارد اینجا صبحانه حلیم گندم گوشت می گذارد. روی این حلیم شیره انگور یا شیره خرما می‌ریزه هم میزنه می‌خوره توپ توپ چهارم اگر کسی ضعف اعصاب و کم خونی دارد سردرد میگرنی هم دارد اینجا دم کرده گل راعی صبح ناشتا با عسل آویشن نعنا میخورد هر سه با هم خوب پنجام وسط روز و عصرانه هر بار یک قاشق غذاخوری مخلوط سه شیره میخوره شیره خرمانی شیره انگور شیره توت شیشوم اول مغرب چای کوهی با اصل آویشن یا اصل نعنا هفتم شبها نصف استکان گلاب طبیعی به اضافه ایم. نصف استکان عرق بیدمشک طبیعی به اضافه یک قاشق قضاخوری اصل آبیشان یا اصل نعنا میخورد برای همه سنین خوبه از زن و مرد دختر و پسر سن بالای هفتاد یا سن زیر دو سال باز از صداش تغییر میکنه مطلب هشتم بعد از شام یک لیوان آب سیب تازه طبیعی سیبای رسیده مخلوط ما عسل آبیشن یا نعنا پس کسی که ضعف اعصاب داره کم خونی هم داره سردرد میگرنی هم داره در خانوم ها علاوه بر سردرد میگرنی اگر سردرد ناشی از قاعدگی دردناک هم دارد باستی این گفتیم یکیش گل راعی بود یکیش هم چای کوهی داخل همین است، سردرد ناشی از قاعدگی دردناک هم خوب میشه. توجه اگر اعصاب این بیماری که کم خونه و سردرد میگرنی داره اعصابش خیلی خورده یعنی ضعف اعصابش شدیده. حالا اینجا به جای چای به جای دم کرده گلرایی و چای کوهی به جای این دو تا ضعیفا دو تا قوی میزنیم. میگیم دم کرده سمبولاتیب اصل اصلابیش و همچنین دم کرده گل باهار نارنج گل باهار نارنج با اثر قبراق قبراق میشه اگر کسی همین ها را داشت مثلا این قاب عینک فرصه اگر کسی همین بیماری ها را داشت به اضافه هم HIV فعال یعنی ایز فعال که یک مدلش هم تو خراسان اومده اجزه خراسانی برای پیشگیری و درمان ایز بهترین داروی طبیعی دو چیز است یکی سمبلو یکی سیاه دونه سمبلو که با عسل آویشن میخورن سیاه دونش هم با عسل آویشن بخورن اینم قابل عرض انجمن اجزه ایران برای خلافم نکنه دیگه این قابع اینک از کاری دست بردارم یعنی خود اعضای جنسی نداشته باشن نشینی مبتزن نداشته باشن اهل دانسینگ و کابارو و از این مسخربازی ها نباشن اهل عشق مجازی نباشن مثل آدم زندگی کنن برم با مشورت پدر و مادر رو تحقیق ازدواج کنن چه پسر چه دختر اگر کسی ضعف عمومی شدید دارد تو ام با عرق سرطا سری بدن اینجا چکا؟ صابه ها شیر اثر شیر خورما هر روز یکی از اینا رو بخوره میشه یک روز در میان حلیم گندمگوش هفته یک بار وسط روز مربای سیب مربای به مربای زردک شب قبل از خواب آب سیب عسل حالا چرا این ضعف عمومی شدیده و عرق سرد تا سری داره کم خونی به اضافه فشار خون زیر ده جوش و جلا هم میزنه افت مایعات خونی افت پلاسمای خون میشه گه دست و چنگ میشه مؤمنان گه عرق سرد بر بدنش میشینه نذیر نزیر دیابتیه که از 20 الی 60 واحد انسولین تزریقی میزنه بعد از انسولین تزریقیش یک کف دست نون یا یک دونه سیب نمیخوره اینها دوچار ضعف عمومی شدید میشن و عرق سرتا سری میکنن حتی اگر چله زمستون باشه گرفتین مؤمنه چی شد اگر کسی سرگیجه دارد و ضعف بدنی شدید داره. مخلوط سهشیرهخرما انگور توت. دوم قرص گیاهی یا داروی گیاهی جینسینگ به همراه اصل کوهی بخوره. وقتی جینسینگ چند مدلن جنسنگ و جنسنگگو، جینسینگ و جینسینگ چهار مدل بعد اون مدل قرمزش یعنی جینسینگ قرمز به اضافه‌ی اصل کوهی بخوره سرگیجه و ضعف شدیدش هر دو خوب میشه تو من چی گفتن این آمریکاییه و ژاپونیه و چینیه و کره شمالی زدن این امریکایی امریکای جاپونیش اسم در کرده در این داروگیایی کره چینیش خوبه از این بهتر با امسال نمیدونم هفت سال یا هشت سال میشه مرکز تحقیقات داروگیایی ایران تهران بلوار کشاورز جنب بیمارستان ساسان زده همه ایرانی خودمون از همه اینا بهتره حالا اینجا مؤمنان بس اگر کسی سرگیجه داره و ضعف شدید بدنی داروی جینسینگ قرمز همراه با اصل کوهی من شد کوهی گایی از این ور میاد کلات نادر گایی از این ور میاد روستای کاهو این طرف اصل باشه مومنات تقلبی نباشه اگر کسی اهل تبریز اینا است از سبلان یادش بخیر. خیر <تصفيق> خدا لعنت کنیم مستشارای امریکایی زمانشو می بردن و می خوردن و بلعطو می گنن. حالا دو قرطو نیمیشونم باقیه بچه ما از جریان حق حسینی یاد میگیریم که هیچ وقت به دشمن اعتماد نکنین زیرا که ظالمین عالم قابل اعتماد نیستن و خدای حسین علیه السلام ابا عبدالله الحسین علیه السلام خدای امام حسین تو قرآن مجید فرمودم به ظالمین عالم تکیه و اعتماد نکنید ولا لا ترکنو الالذین ظلمو فتمستکم النار خدای امام حسین علیه السلام در قرآن فرمودم لن ترضا عنكم اليهود ولن نصارا. حتی تتبع ملتهم. هم. هرگز یهود و نصار از شما راضی نمیشن مگر کاملا دست از ایدولوژی و مذهبتون بردارید و به خواسته نابجای اونها عمل کنید. همین شروری که امروز از دهن رئیس جمهور آمریکا پریده بیرون که ما تغییر ایدولوژیک دادیم فلان پشمدان. آول از سیاست بزدل و ترسو نباشید تا دشمن شما را دور نزند حرف جوجه هزاران گوش نکنید حرف امام حسین علیه السلام گوش کنید که به آمر ابن سعد فرمود آمر ابن سعد تو حوث و خیال حکومت ری داری مقام پیشکش تو از گندم ری هم نمیخوری. قابل عرض رئیسایی بریور بر. شما به کلتون زده استمرارم مثلا مقامتون یا چار مسقال مثلا چار پنی میلیارد دوستتون پول بدون یک قرونم به حلقومتون نمی ریزن چقدر آدم باید ساده لو باشم که اعتماد کنه به وعد و عیده های و یا از وعیدهای دشمن قالب توی کنه و تو جمع دانشجی بگن آمریکا به قدری قدرت داره بمب بندازه همه جا بره آمریکا اگر ارزه داشت 30 و چند سال انجام میداد حضور آمریکا در خاورمیانه میانه نشانه زرفشم همسر اینه که رئیسا بزدل و ترسو نباشن که دین فروش باشن یا وطن فروش یا جاسوس دو جانبه که تمام افراد این دولت همه درس خونده یه تو امریکان خیال کردید کسی شما رو نمیشنسه خدای حسین علی السلام همه شما رو میشنسه مولا صاحب زمان همه شما رو میشنسه حراست و حفاظت و اطلاعات و ضد اطلاعات این کشور همه شما را میشنسه چند روزی که مقام دستتون اومده کمتر دلدخ کنید کمتر گردخاک کنید نه خودتون رو و نه ملت شریف ایران رو در مقابل ظالمین آلم زلیل نکنید پس بندگان خدا اگر کسی ضعف ازولات ارادی دارد یا بیماری دیستروفی دارد در زم خونم هم فشارخونش هم پایینه. چیکار کنیم؟ فشارخون زیر ده. خونی فقر آهم. زفع عضلات ارادی. میگیم به این روایت عمل کن. که در وسالشی جلده هیفته. بعد هر قضا هفته خورما. تمام شده. بعد هر قضا هفته خورما بخون. همه اینا خوب میشه. اگر کسی زعف ازولانی دارد، سستی اعضا دارد، در کل بدن، یعنی بیماری میاستنی گراو دارد. اینجا مواردی باید پرهیست کنه و نخوره. مثل اصانسای شیمیایی که تا بیماری می آورد. یکی هم زعف ازولات و شلوبل شدن ازولات، یعنی بدنش مثل پفک نمکی میشه. باد و برود داره، بنیه نداره، بنیه سسته. نزیر این مرگ خروسای ماشینی تقیه بزنی استخونش میشکنه با دستم گوشتش جدا میشه اما این مرگ خروسای داعتی با ساتون هم میزنیم و دیر استخون میشکنه با دست هم کنیم بشکنی اگه تونستی بشکنی جایزه داری اینقدر محکمه گوشتش هم با دست نمیتونی بکنی باید با چاقو بکن توپاره تصاوی کردیم مثال زدن اوسانس های شیمیایی اصلا تو خارج مومن های نوشابه های گازدار روزه سنگشویه توالت بکار میبرن شوقی نیم که این داره بکنه نه ورد باید ما برمیداریم تیرک میریزیم و سولفوریک سلفوریک میریزیم که سینوسا ها و چشما و ریاه همه در به داغون میشه تا سن دوازده سادگی به بچه هاشون نوشابه نمیدن آتش آتاشقالا نمیدن تو کشور ما به دیکته دشمن مد شده حالا اگر کسی زرف ازولات دارد و سستی سر تا سریع بدن دارد یعنی بیماری میاس سنیگرا یعنی شل شدن کل عضلات بدن و شبه فلجی ها پیدا کرده و شیمیایی شیمیای نخوره فست فودا سوسیس کالباس همبرگر پیتزا این چیزا نخوره صفت کردنی تفت دادنی نخوره قرص های شیمیایی که در آخر اسمشون پام داره، مثل دیاسپام، کلورسپام، اکساسپام، از این چیزا نخوره؟ چرا؟ چون همه این مواردی که گفتم سستی زانون میاره، شلی ازولات میاره و شل شدن تاندون های پشت پا میاره همچنین تو بحث شیوید یا عرق شیوید زیادم نخوره اگر کسی کلسترول بد ال دی ال دارا کلسترول خونش بالاست شیوید چه عرقش چه خودش چه تازه چه خشک زیاد نخوره که هم مؤمنان نور چشمش کم میشه هم سستی زانو هم شل شدنه تاندونای پشت و پا میاره اینم پس حواسش باشه حتی اگر قرصین گیاهی آنتوم باشه که برای کاهش بده بدخونه حالا درمان این زعف ازولانی و سستیر اعزاچیر صبحا شیر اصل روز دیگه شیر خورما یک روز در میان تکرار حنیم گمدونگوش هفته یک بار خوردن مقداری روغن بنفشی معطر، یعنی روغن بنفشی طبی کوهی در پای روغن زیتون سوم شامشو حتما بخوره زودم بخوره بعد از شام راه بره گفتیم بعد از غذا چی بخوره هفت خورما حالا اگر دل مالش کم دوش کم خونم بود یعنی تا غذا می نیم ساعت دیگه دلش هم ضعف میره اینجا هفت خورما رو بعد از غذا میخوره یک کم قدم میزنه یکی دو تا سیب رسیده شیرین رنده میکنه مخلوط با عسل میخوره این دل ضعف هر نیم ساعته خوب میشه مؤمنان شهاران شبها بعد از شام تا وقت خواب یک لیوان آب سیب رسیده طبیع تازه مخلوط با اصل آبیشن که گفتیم آب سیب برای کسی که یوبوسد یا نفخشی کم داره دیگه پیاره یا توفاله سیب رو نخوره پنجم. قبل از خواب سیاه دانه با اصل بخوره هر وقتا به حمام میره سیگرم گرم آبیشن شیرازی رو در آب بجشونه آبش صاف کنه بریزه تو آب لگن یا وان حمام این عضوی که سست شده یا شبه فلجی شده یا عضلاتش نشده، تی این جوشونده آبیشن ای که محلول شده با آب وان 40 درجه ماساژ بده بعد که در یه 20 دقیقه ماساژ بده بعد که در آورد زود بگیره خوش کنه لباس گرم بپوشه این سوستی ها و شبه فلجی ها خوب میشه اگر کسی کم خونی دارد و عدم رشد کافی قدی تا پایان 25 سالگی دارد کم خونی و عدم رشد کافی استخوان و عدم تراکم مناسب سلولای استخوانی تا پایان 35 سالگی دارد یه سری چیزها رو باید پرهیز کنه مثل قندهای شیمیایی قند شکر شکرشنجات قنادی یا ها، های شیمیایی نوشابه آب میوه شیمیایی کافئین زیاد چای پررنگ، چای مونده، چای با آسانس، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه ترانس چربی بالا به نوع تصنعی مثل خام سرشیر، روغ انجامه، تردیک اینا برای سم نخوره درمانش چیه؟ مغز بادام، شیرین، درختی خام روزی چارده عدد دونه دونه قشن به جا قرد بده دوم مغز خام پسته درختی شرطه که یوبوست نداشته باشی اگر هم ازدواج کرده باشیم، برای اون مطلبت هم خوبه قابل عرض مرد زندار حد دست ندیم مؤمنم سوم مغز فندوق خام خیلی فواید داره حتی کسایی که دعا صدفی یا پسور یزیز دارن در اونم چهارم مغز بادام هندی خام کسی که درد قوس کمر داره و اینایی که الان گفتن اصل، خورما، شیرگاب، تازه کمچرب، پنیر به همراه مغز گردو شبها به عنوان دسر یا نان سبک، یا غذای سبک با نان سبستار میتونه بخوره اگر لاغرم هم، ها، پوکی استخونم داره حالا هر داره بخواد همزمان روبراه کنه اینجا پنیر تازه رو با خربوزه رسیده شیرین دو تاشو با هم بخوره اینا روایات داریم ها شب بخور یکی دیگه چیه مؤمنان کم خون هست پوکی استخوانم داره رشت قدیش هم مناسب نیست پودر سنجد با عسل پودر سنجد با عسل تراکم سلولای 100 آستوخونش خیلی کم از ایسی کلسیوم زیرا که از 100 صد در 100 کلسیوم نودو هفت درصدش در, در آستوخون است سه درصدش در گردش خونه حالا به خاطر اینکه مهندسی معکوس نشه و از 100 آستوخونا کلسیوم کم نشه میگیم اینجا پودر سنجد مخلوط با عسل مخلوط با شیر تازه گاو. قشه هم بزنه روزی لیوان اینجوری بخوره. سلام محمد و آل محمد تشکر میکنیم از ساعت قدسی و نورانی استاد عزیزم حضرت استاد علامه مهمان ارجمندی استاد خواهر محترمه سی ساله هستم سوال فرمایندن که در قاسمای مقدار آهن خونشون بیش از حد مجاز بوده یکی از پیزشکا و فرمودن که فهموندن که گوشت و مواد غذایی آهندار کمتر مصرف کنه که مسمومیت آهن براشون میاره ولی پزشک دیگه و کارشناس محترم دیگه فرمودن که اشکالی نداره شما میتونید مصرف کنن نظر حضرت وادی چیز مصرف. گوشت قرمز فعلا براتون بده هر نو اش باشه مگر سردست گوشت ان اونم هفته یه بار یه سردست اون دکتری هم که گفت خوبه مرادش گوشت سفید ران مرغ بدون پوست یا ماهی قزل آلا بدون پوست بعد اینکه آهن بدن رفته بالا باید ببینید تحالت چه مشکلی داره حتما پیش متخصص داخلی تحال سپرز زیر دنده چپته این چک بشه حتما یه چکاب اینه بره تو کتابم بخوای تحقیق کنی آسان خود سرازوی داره قفسه باز کتاب میوه درمانی دکتر محمد صادق روجخان. اولی کتاب بحثای روی کوبالت منگنز مس آهم و تو قسمت آهم جواب سال هم اومده و چیزایی که آهن زیاد داره نباید بخوری چیزایی که درصدش کمه باید مصرف کنی با خیلی متچکر سوال فرمودن از خوردن جگر گوزفندی فهمدن بعضا بیشنبی میگن که محل مصمومیت هاست و سموم هست ولی بعضی میفهمن که برای کمپونی مناسبه نظر از اطالی فرمودن در این مصرف جگر سیاه گوسفند پلاسما داره جگر سیاه گاب پلاسماش بیشتره. همچنین برای کم خونی های فقر آهن مفده یا کسی که ویتامین دیش کمن مفید نظیر کره جگرسیاه. اما چند شرط داره. به شرط اینکه چربی های مظر خونت بالا نباش. یعنی الDL خون و تریگیرلی سرید خونت بالا نباش، دوم. به شرط اینکه اوره و کراتین خونت بالا نباشه یعنی اسید اوری که خونت نمک سمی خونت و فسفات ازوت بالا نباشه سوم به شرط اینکه ناراحتی های مثانه التاب مثانه یا ریزش سلولی مثانه نداشته باشی که تو روایات شیعه داریم. میگه کسانی که احشاء داخلی حیوانات حلال گوش زیاد میخورن و جعل مسانه دردهای مسانه می گیرن. چهارم کسانی که فشارخون نوستانی دارن یا فشارخون بالا دارن نباید بخورن پنجم کسانی که سرسوزه معده دارن و یا ریفلاکس متوسط یا شدید دارن باز نباید بخورن چرا؟ چون هر تیکه از جیگرسی ها مقدار کلسترول بدش به مقدار نیم کیلو پی یا نیم کیلو دمبه کلسترول بد داره ازا چربی فشرده است پس این بیماریای متابولیکی یا غیر او رو نباید داشته باشه بله اگر زنی سخت جنین مکرر کرده یا خون ریزی داخلی شدید دشتن یا دو تا 28 بخیه شدن یا اینکه که یا سزارین شدن حالا افته پلاسمای خون داره اینجا این شیشه های مربعی رو تا نصفش جیگرسی ها خورد میکنه توش میریزه درش میبنده میذاره تو آب جوش به بیس دقیقه میجوشه این آبی که پس داده این آبشی میخوره ظرف یک هفته این پلاس خونش چیه مایات خونش برمیگرده اون لپاش دیگه نمیخواد بخوره براش خوب نیست حالا تعویش میگیره کسی که خون ریزی شدید کرده حال اگر خونش هم پایینه پودر نمک سنگ اگر املاح بدنش هم کمه تو بحث نرمی استخوان و پوکی استخوان. و همچنین فشار خون پایین حالا نمک یود داره دریا یکم روش می‌ریزه با این آبه که قاطی شد از مایات جگر می‌خوره اون لپاش نخوره نذیر بعد از زایمان که کامپوت سیب بخوره آواشی بخوره اما لپای سیب نخوره چون کسی که کم خون شده نفخ کم و یوبسد داره و آنان که به بچه شیر میده یوبسدش بیشتر میشه و نفخشی کم قاعدتا داره لذا بعد از زایمان کامپوت سیب فقط آباشی میخوره لپاشی نمی‌خوره. اما کامپوت گلابی هم لپاشی می‌خوره و هم آباشو تصورش رو چی گفتم؟ این کمپوت های دیگه هم که اوستت آوردن ها تو بیمارستان یا فامیل و غیر فامیل رو تو خونت یا بیمارستان آوردن هرگز شما نخوریم برای مادری که تازه زایمان کرده آه. تا دو هفته برات سمه مثل کامپوت زردالو مثل کامپوت گیلاس مثل کامپوت آلبالو آه. اینا برای سمه دل های شدید میگیری علاوه بر دل دردهای رحمی و میوه موز هم برات سمه این دو هفته اول بعد از زایمان نباید بخوری خودت به اندازه کافی دوچاره یوب سلبت شدی میوه موز قابزه نیمه نارس و نارس یوبوسط شدید میاره اگر رعایت نکنی ها تو آخر عام روست میمونه پس اونایی که برات خوبه ها شیر اصل برات خوبه زرده تخم مرغ سالم کام فلانزای پرندگان هم نیست مخلوط با اصل قاطی شده با شیر برات خوبه زورها یه سیخ کباب لغمه با نون بخوری برات خوبه به جای پلو قیمه و خورش سبزی سبزی هاش درشتی و لوبی های کمپز چیم از خواهوازی تو بیمان هستان را مندازم بنام این بنده خونه همه درد دل رحم میگیره ای سروم رس آمپول درد میزنه تو سرم. یا پنیر مثلا کله بیم بنده خدا میدی پنیر یو میاره این خانومی که حامله هست یا بچه شیرده است تو به ناشته که نباید نون پنیر بخوره این رو باید با یه لیوان شیر اصل بخوره زورش ضعیف قبل از زایمان یا بنیش ضعیف شده بعد از زایمان که نفسش بند میاد با این که آسم نداره اینجا زرده تخم مرغ سالم بدون آنفلانزای پرندگان بدون باکتریای مزر اصل طبیعی و یکی هم چی؟ یک, یک لیوان شیر اینا رو مخلوط میکنه حالا یه, لو... یه قلوب پی میخوره بعدم یه کفت از نون میخوره باز دوباره یه قلوب پی میخوره باز یه کفت از نون میخوره یه مرتبه نخوره که حالت تهوع و استطلاقش هم نگیره خیلی متشکر مهمان عجبندی سآل فرموندن اصد از اینکه که آوازادرشون بیست و هش و غلظت خون دارن و مهمان دیگه س آیا برای درمان میشه از انار استفاده کرد؟ و که و چی میزان باید انار رو استفاده کرد؟ و مهمان محترم دیگه سال فرموندن که آیا کم خونی باید قلزت میشه یا نه؟ از قلزت سه سال داشتن چه رو که زیاد آب آشامیدنی سالم آب جوش بلن کم خوردن همه اینها قلزت خون میاد. چون در 24 ساعت تبخیر آب داری از پوستت در 24 ساعت تبخیر آب داری از باز دمه دهانت برگشت هوا در 24 ساعت چند بار قرارگاه صدام میریم همجه اعدام میریم اوسعه جویدن غذا اوسعه حضم غذا اینها همه نیاز به آب داری پس تحرک زیاد کمی آب خوردن کمی آب جوشه به خوردن عرق ریزش زیاد اینا همه قلزت خون میاده حالا افرادی که عادی هستند هیچ ده سال به بالا اینجا میگیم تو شرایط گرمایی مثل چله تابستون هر شیش ساعت دو لیوان آب بخوره تو شرایط سرمایی مثل چله زمستون اینجا هر شیش ساعت یه لیوان آب بخوره حجقا خونم آپارتمانیه. این هم صوقات انگلیس ایران زمین کم نداره حالا چکا کنیم بدبختی به صداق مردم اومد. آمریکا دروازه این مملکت رو بیرون انگلیس موزی از پنجره آمد تو حالا خونا که آپارتمانیه چون که این گازهای طبیعی محیط و خشک میکنه لذا صبح که خواب پا میشیم این داخل بینیت میسوزه رطوبت اتاق کم بشه ترشوه عرب و تبخیر آب از پوست بدن بیشتر میشه. حتی در بازدم لذا افراد توجه به این ندارن خب میگه زمستون هوا سرده برای اینکه تون تن نرم قرار داره سرده هم. اصلا آب میبینی نمیخوره چند روز گذشته آب نخورده مبتلا به قرضت خون میشن بعضی هاشون هم ور میدارن سطحی نگری میکنن یعنی با این چشمای ظاهری میبینه به قول کابوسی این دوگوله رو به کار نمیدازه یعنی عقلش رو به کار نمیدازه سواد و علمی هم که داره به کار چیکار میکنه؟ میگه این فیش برگو نیم برم این فیش گاز زیاد شده درزای همه اتاق و پنجره هم میگیره صرف جوی انرژی یکی از اشتباهات معاصر همینه کسانی که در خانه یعنی اتاق محل زندگیشون جریان ضعیف هوایی نباشه اینها مبتلا میشن به هم آسم که تنگیه نفسه هم مبتلا میشن به ناراحتی قلبی و همچنین ذریب تبخیر آب از بدن بالا میرن مبتلا به قلیزت خونم میشن احساس کفتگی، خستگی، درد گرفتگی چون پمپاژ خون قلیز فشار اضافی به ازاله قلب می آورد پس اگر خونتون آپارتمانیا، همه جا هم کیپ بستی باشه شیش لیوان آب بخوری هم سلام به این جدیدیا از دکترای محترم هم سلام به قدیمیا برسونید طب سنتی دارم تو بحث آب و آب جوش ولرم میگن این روایاتی که مطلق هستا به اطلاقش عمل نکنی اشتباه نه اینها هر کدوم قیودی داره مطلقایشتن و, و ما الف قید و سه تا از قیودی که مبتلا بهتون هست در محیطای اجتماعی خانواده و توضیح دادن حالا چی بخوری؟ قیل زدت خونت خوب شه؟ یه بار سوقات قرب و شرقه مثلا آسپرین 80 ملی گرمی میخورم بارفارین میخورم هپارین میخورم یه بار دیگه نه خوشمزه آب و آشامیدنی دنیه سالم آب حالا ببین جیبت پرپول تره یا تو خونتون هست؟ آلوبخارا انناب ریواز زرشک خام تمشک همه اینا رقیق کننده های خونه حالا هر کدوم تو خونتون بود حاج آقا؟ بله هم خونی فقر آهن دارم هم یوبوسط حد دارم هم بچه شیر میدم هم قلزت خون دارم چیکار کنیم؟ اینکه آسون خوشمزه نمیخواد چهار تا دارو بخورید یک دارو بهترین زمانش هم شب قبل از خوابه شب قبل از شام استغفر شب قبل از شام شبها ها قبل از شام 7 عدد الی چارده عدد آلو بخارا آلو بخورای خوش به صورت میکیدنی دونه دونه بذار تو دهنه تا آب شه بعد یکی بعدی بعد یکی بعدی شیر هم بچه زیاد میشه وسته تا دیگه هم درمان میشه یا تو مون مومن این محصول خدا مصنوع خدا رو بخور نه مصنوع دست بشر که علمش محدودن. آینده نگریم قالبن ندارد بفهمید. بحث انار تصفیه کننده خون هست حتی تو بحثای رشد ناکافی کودکانی که بدخورن مخصوصا بی اشتهایی التهابی دارن بعضی از متخصصین تو فقر آهن هم گفتن حالا اونی که مورد نظر ماست کسانی که شکم روش دائمی دارن سستی بدنشون و ضعف توان عمومیشون از حیث انجام کار سعی شخصی یا اجتماعیشون به خاطر کمبود املح در بدنه حالا اینجا چیکار کنیم که جلو شکم روش دائمیشه بگیریم؟ یا جلوی کلیت زخمیش رو بگیریم یا جلوی آی بی اس نوع دو یعنی جلوی اصحال صفراوی رو بگیریم که مشکل انتاعی روده کوچک دارد و شیکم روش دائمی دارد یا نه این زعفی که داره دچار انگله های خاص از کرمک انگلای مختلف مثل کرم کرم کدو، کرم اسکاریس اینجا دم کرده برگ انار یا دم کرده پوست انار یا پوست ریشن یا پودر دانه انار بعد از هر غذا یک قاشق مرباخوری بخوره تمام اینایی که گفتن برای همه اینا مفیده حتی در از بین بردن و دفع کردن کرم کدو و کرم اسکاریس. پس گایی رنگ پریدی شخص و بیبونگی و سستیش به خاطر وجود انگل در دستگاه گارش معده یا است او شیره غذا را عبه میبره من میخوره تفاله برای این بنده خدای انسان میمونه پس باید انگلها رو از خودش دفع کنه مثل مغزه خامه تخمه هندوانه مثل تمرهندیه بی نمک مثل سوالی که فرمودین بحث چی انار تو کتاب می به درمانیه دکتر محمد صادق روچخان نگاه کنیم حتی در کتاب های از قرن چهارم هجری قبری مثل ابو موسا تو بحث علاج و الاطفال به قسمت جلنار جلنار یعنی گل انار بعد میگه به فارسی گل انار فارسی گل انار نر صد برگ هزار آورده. عرب ها بقیهش هم همه به عربی عورده عرب تا نصف صفحه و به اسطلاح تب سنتی جدید به گل درخت اناری که میوه میدهد میگیم گلنار فارسی به گل درخت اناری که میوه نمیده فقط گل میده میگیم گل انار نر یا به اسطلاح پزشکی جدید گلنار وحشی حالا مباحثه خودم هم تصفیه کننده خون هم شفاف کننده و درخشان کننده پوست بدن مخصوصا پوست صورت. این گلنار وحشی خاصیت تصفیه کنندگی خونش از گلنار فارسی قوی تر این رو با یک لیوان آب انار شیرین صبح ناشتا یک بار بخور تا یک سال ای. از کورک از دومل از زیگیل بباعث خودم صورتت بر درخشان میشه خون از اعماق میاد به زیر سطح پوست آب و تاب پوست پیدا میکنی. دیگه سال خواب سفیداب و ژله و پودره نمیدونم چیچی حسن این یه عدتفاره نمیخواد امتحانش مجانی بعضی از دکترا و مهندسای دکتر تغذیه و مهندسه صنایع قضایی مثل دکتر مهندس شهرام مقصودی اون تو انار درمانی میگه مثلا این گلنار وحشی رو با دو لیوان آب انار بخوره آب انار تازه ها حالا شما هر جور دوست دارید دیگه؟ انار شیرین، انار ترش، انار میخوش قربون امام صادق و امیرالمؤمنین دارم. حتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفهمید رمان المزد الافلام میم زنبوری مشدد مزاح. یعنی انار میخوش با این پرده ی روی نازکی روی دانه ها که بخوریم. ید بغل حتی جدار مهده میکنه. انگلا و قول حتی پاکسسازی جدار داخلی معده میکنه. نمیگذره انگلا کرمک ها و یا باکتریای مزر مظر لانه گزینی کنن. یاد به قول معیدیم دکتر لبی بیون مای دانشگاه دمشق تو کتاب تبل مصومین بحث رومان. اونجا این روایت رو از امیر المومنین علی علیه السلام آوردن و شیخ کلینی در کتاب فروع کافی علامه مجلسی در بحار جلد شست و آیت الله ما برو جردی قوم در جلد بیست جامع حادیث شیه و مستدرک محدث نورین این روایات باب رمان آمده حاج؟ آقا بله اگر خانومی قاعدگیش نامنظمه نیست بحثمون تو خونه؟ بذار اینم بگم اگر کسی قاعدگیش نامنظمه بخواد قاعدگیش منظم شود اگر خونش قلیزه بخواد رقیق شود اگر خونش کثیفه بخواد تمیز شود و اگر مشکل اسهال و شکم روش دائمی دارد اون هم خوب شود انار ترش با پرده نازک روی دانه ها همه اینا رو خوب میکن قاعدگی رو هم منظم میکن از این زیفتر اگر مریض سرسوزه معده داره یا ریفلاکس داره اینجا انار شیرین با پرده نازک روی دونه ها بخوره قاعدگیش هم منظم میشود نظیر چای رازیانه به قعدگی شما منظم می کند. حتی در گرم مزاجان چه پسر چه دختری که ازدواج قانونی و شرعی کردن یا زن و شووهری که ازدواج قانونی و شرعی کردن؟ مخصوصا در گرم مزاجان اگر انار ترش بخورند تقویت قوه باهشان میشه. در سرد مزاجان انار شیرین. هنوز نهزت ادامه دارد یعنی باید چند روز بیام فقط درباره باره انار صحبت بسه دیگه محمد اشترالله <تصفيق> چون فصل انار رو برزنه <تصفيق> هست این ها پشه برناته بفرموید قایه آجمای زید سآل فرمیدن. من مجموعی از سآلات رو خدمت شما عرض میکنم جمع و حضرت حالی مهمون عجموعی فرمویدن که اینگامی که ورزش میکنم و میدونم طرزش هم زیاد میشه سرگیجه میگیرم و سیاهی میگیرم مهمان عرجمن که انگام میشینم پام مرمور میکنه و وقتی بلند میشم همینجور سیاهی چشمم میاد و سرگیجه و مهمان عرجمن دیگه و من دستم و وقتی بلند میکنم و چیزی میخوام بردارم گاهی سرد میشه بدنم بگتن رابطهش با کمخونی اگر فشار خون زیر ده گاهی هم جوش خوردن و استرا. ولی کم خونی و فشاخون زیر دهه و جوش خوردن و استراب تو بعضی هست وقتی که یک و دو میکنن حالا امتحان ورزش مسابقه اسم خواهد اول دوم سه شه مثلا خواهد چکاش پاس کنه من خونه اجاره رهنی هر سالی ما جابجا به جا کنه اساس ها رو نمیدونه قصه گرون شدن اجاره بخوره یا قصه پول بار یا قصه شکستگی اساس کشی تفلک قصه هاش به توانسته حالا در این مواقع حتما باید عسل گل بهار نارنج یا مستکی شیراز یا دم کرده گل بهار نارنج با عسل بخور. مالی کم خونیش و فشار خون پایینش گفتیم بعد غذا هفت خورما حالا فرض کن مثلا کسی که هر سه تا کم خونیار هم داره که چشماش سیاهی میره تا عجاجش بلند میشه سرگیجه داره تا میشینه دست پاش مرمور میکنه کرخ میشه خواب میره پس کن هر سه تا ها رو داره هم فقر آهن داره هم فقر ویتامین به دوازده هم فقر فولیک حالا چیکار کنیم ستاش با هم خوب شه که سه چیزه یک روز درمیون بخور شیر اثر شیر خورما حلیم گندانگوش با نهارش کاهو بخوره کاهو بدون سس با شامش هم کاهو بخوره بدون سس ولی بعد از نهار و بعد از شامش هر کدوم هفت و خرما بخوره شباب بعد از شامش دو تا سیب رنده کنه اگر یبوست و نفخ داره آبش بگیره با یک قاشق غذاخوری عسل هم بزنه بخوره هر سه تا کمخونیاش خوب میشه حاجه دور سر بچه من گرفت هم گرفتم میگه دور سرش کم شده نکنه حاجه مخچش رشتش کم باشه اقابون دیگه یه ذهنی بگیره یا خودم حاجه نکنه مثلا جمجمه تو هم بره و بعد فشار اضافی بیاد روی عصب هفتم مخچه نکنه ایک مرتبه علیل و ناتوان بشم و فلج کامل چون که مثل که این جمجمه هم داره تو هم فرو میره به اصلاح قدیمیان دو کلهی دارن میشن پزشکی جدید با جرعی نمیکشه اگر دیر نجنبه و قبل اینکه که مبتلاش بچم یا خودم به این مسئله چی میگن؟ میگن قرص فولیک بخور تا طورفتگی استخون جمجمه پیدا نکنیم. مخصوصا قسمت مخچه و همچنین دور سر کودکت رو که بچه اندازه میگیره دکتر محترم دور سر بچه اندازه میگیره نگه دور سرش کچیکه به تراز سنیش بعد یک چهارم قرص اسیدفولیک شیمیایی بده حالا شما میتونی با آب لبو همین لبو هست الان اومده سرشار از اسیدفولیک بخارپز یا آب پز بچلون یک قاشق چای خوری آب لبو بچه بده به جای یک چهارم قرص اسیدفولیک یا اینکه کاهو به چلونش یک قاشق چایخوری آب کاهو یا اینکه فرض کن مثلا بچه هم دور سرش کم شده و هم دیابت نوع یک داره قند بیمذه ژنتیکی داره یک قاشق چایخوری آب سبزی خرفه هم قند خون پونزه واحد میاره پایین هم بچه مبتلا به انسلین تزریقی نمیشه هم فلی که بدنش تأمینه یا تومون چی گفتم مؤمنان دعاشو به جون خدا و چارده محصوم کنیم چدا بیایی خوشمنزیگی خب آخرین سوال هست اگر مهمان و موافق باشن و جمع سوال فرموندن از ارتباط کمخونی با خلق و اخلاق و کمخواسدگی و پسید این نست فرموندن گایی غذاوتها و متاسفانه غذاوت های اخلاقی میشه و حتی اشکال ها به سمت اختلافات ولی در صورتی که ریشه اشکایی مخصوصا بین زوجین یا مهمانه یعجمند سال از آغازدهای و فرزندان خورتسالشون هم داشتند. برای شما ارزش شود که ماشاءالله ماشاءالله زوار امام رضا، مجاورین امام رضا، همه دیندار، خوش اخلاق، رفتارهای مثبت، فرهنگ سعیدان. حالا گاهی می‌بینید مؤمن مثلا این بچه اینجوری میشه مثلا یا زن یا شوهر یا پدر یا مادر یا فامیل یا همکار. زود سوء زن پیدا نکنی که اینا خواب شده. نه اینا خراب نشد از عوارز کمخونی مخصوصا فقر آهن، بی حوصلگی افسردگی کم کم نقطه سنجی های محلش ندا نقنقو هم میشه همچین وست ایست بازرسی میذاره پشت در خونه اگر جاعت داری بیا توتا همون پشت در خونه سینجی میکنه کجا بودی؟ چرا نیمدی چرا پنج دقیقه دیر کردین چند بار به تو بگم اینه بخره چند بار تکرار کردم نه که میگم واقعیت دارم با اینکه ناموست هم دین داره هم خوش اخلاقه هم رفتارش مثبت هم اطاعتش رو میکنه اصلا بد نیست به کم خونیش نرسیدی ای شو عاقل ای پدر عاقل این دختر، این عروس، این ناموست که بالغه رشیده آقل است عادت ماهیانه میشه، حاملگی داره، دوران شیردهی داره، دوران یایسیگی داره نصف بیشتر اینها دوچار کم هن، به مدلهای مختلف، مخصوصا فقراه هن پوکی استخوان میگیرن، ریزش موی سر میگیرن حالا همین فقر آهنش او رو افسرده کرده به نوع افسردگی عادی یا سرماخردگی روانی. او رو بی حوصله کرده، بی قرار میشه، بی تاب میشه، زود اکوره در میره اون. چطور به ماشینت میرسی میگی سخ رسانی بشه؟ بنزین نمیدارم، گازویل، گاز طبیعی فلا. آیا بدن ناموست سوخت نمیخواد؟ تین تی هوای سرد، انرژی و کالری لازم نمیخواد؟ خورمای تازه یا خوش شده ایم. ارگانیک طبیعی سرشار از انرژی و کالریه سرشار از املاح تقویت عضلات میاره فقراهنش خوب میشه زعف عمومیش خوب میشه پس به جای اینکه پول بدی به قند و شکر یا شنیجات قند که که ناموس ناموستم کم میشه باز عوارض سوئی دارد کروم حالا اینجا چی کار کن شما این خورما رو بذار تو جیره غذایی نمیخواد پول بیشتر بدی استخواناش بیشتر پوک شده ریزش موش بیشتر شده حالا اینجا مغز بادوم شیرین می‌خرید مؤمنان نیم کیلو بخری. یه ماهش میره نمیخواد پول اضافی خرج کنی این پولی که با آتش قلا می‌دی تا آب نبات میگیری که یه موش آشغالن یا شکلات میگیری یا پفک از این حرفا مزمنس به این آتاش که میگیری اینجا شما چکار کن؟ یه نیم کیلو مغز بادام شیرین درختی خانواده شیش نفره سه کیلو هم خورما حالا این هسته خورماش در بیار پرده نازو که روی هسته زده سرطان فایبر فیبر گیایی سرشار داره او پرده نازو که رو هسته بکن بذار قاتی همین گوشتای خورما یه مغز بادام شیرین بذار لاش حالا بده دست حرف منو گوش نکن ای مرد یا عاقل که شوهری یا پدری تو روایاتش یه میگن این شوهر این پدر لقمه ای که دم دهان زنش ببران برایش ثواب می حرف منم گوش ندید فرمایش رسول الله رو گوش برین یه سرات بفرستین تو <تصفيق> ج ملا محسن فیض کاشانی داماد ملا صدرا در کتاب مهجت البيضاء جلد سفه هفت اِنَّوَجُلَ لَيُعْجَرُ فی رفع اللُقْمَتِ اِلَى فی اِمْرَأَتِهِ یه مرد عاقل که شوهر شده، پدر شده، پدر بزرگ شده این لغمه قضا رو که میبره دم دهن ناموسش خانومش یا مادر بچه ها یا بابا بزرگ دم دهن مادر بزرگ میبره میگه بفرما ای کسی که خدا تو را قرار داد تا اونس برای شوهر پدر پدر بزرگ باشی ان الرجل لا يؤجر في رفع اللقمة الى في امراته میگه پاداش میگیره مزد خدا بهش میدن میدونی مزدش تو بهش میری بعد اینجا میخواستیم مثلا به چند نوبت چش بدوزین اونجا حوریای بهشی میزن دور مخلوق خداست بهش تو جهنم همی حالا هست اگر کسی چشم بسیرتی چشم برزخی داشته باشه همی الان جایگاه خوش تو بهش می‌بینه. اصلا لازم به گفته من نیست خواستم بگم خوبی کن تا بهت خوبی برسن نه اینکه که نظره نه اینکه که تنگ نظره کتهبینه خسیس بخیلن شحمطاین که چار مسقال کار کرده چهار تا دونه ورده تو خونه همش قرلند کنه به کسی به نخوره دیگه من خودم هم داداش بزرگم هم شوهرم هم بابام هم آقا بزرگ به کسی به هم نخوره تا هم خودم رو با صدای بلند موعزه میکن که مثلا چار مسقال خوراکی که ورده تو خونه بخورین دیگه الاهی کوفتتون بشه الاهی بر تخت خورین فلا. اینا حرفای خوب ها دادگاهی خانواده دارم این میگن شوهر این میگن بابا این میگن آقا بزرگ چی میگیم من شما ارزه نداریم مثل پیغمبر اکرم این انگوش کچیکشو تو دهن مبارک امام حسین که امام حسین دو شیر میخورد. منو تو ارزه نداریم ولایت تکوینی نداریم علم لدانیم نداریم لاغل این چار مثال قضا میبری خونه دیگه کوفت زن بچه نشه یکم اخلاقت خوب باشه اخلاقت حسنه باشه خودتو همیشه تلک نگیر حضرت خانومم هیچ وقت خودشو هند جگرخار نگیره تین این گرونی و تین این تورم و این اقتصادی و نظامی اینا هم همه تو تیغ نزن سینجین نکن گناه داره ارحم ترحم رحم کن به شوهرت تا خدا در قیامت به تو رحم کنه. و تو بهش قلمان بهشتی در خدمتت باشه چقدر تو رو آیاتشیه داریم اگر یه آب خنکی ما الباردی همسر گرامی مادر بچه ها به دست شوهر بده به دست پدر بچه ها بده چقدر ثواب داره خدمات متقابل احترام متقابل معین یکدیگر بودن حفظ شخصیتی یکدیگر. انتظارات بیجا نداشته باشی خواسته بجات رو در زمان مناسب مطرح کنی خاسته های نابجان نداشته باشیم. باز روایت دیگه هم بخونم قابل از همه مردا و پسرا پبخشینا به کسی برنخوره آخر مبارسه یکم گوش خودم تاب بدم به کسی برنخوره هم مردا شما رو دوست دارن وای مردا پسرا شوهرها بابا آقا بزرگ خانداجی جان عمو جان <تصفيق> امشب که شب یلداس تو روایات شیعه میگه اگر کسی تو بحث خورد و خوراک حلال قدگری در بیاره بگه هر چی من میگم همون باید بخوریم مثلا خالص سبزی هیچ خورشی دیگه نه بچهش همه مجبور باشن الا همینی که این جور میگه بخورم قضاهای حلال هم آشامیدانیه حلال میگه مامن به شهوت یعنی به و خواست صحیح همسرش قضا میخوره میگه عزیز سلام هرچی نار درست کردی دست تلا مامونه میخوریم فقط حلال طیب باشه مادر بچه ها خسته نباشی، دست تلا، دشمن خسته، خدا قدرت بیشتر به بده. که دستی شیفته، مردا کار میگن، تفلک ها نونه بخور، نمیر میان خونه. حالا تشکر زبانی از مادر بچه ها میکنه، میگه همونی که درست کردی ما میخوریم، نور چشم ما. اینجا میگه علامت مؤمن بودنت. حرف ما هم گوش نکن. چه شیعه چه سنی چه انقلابی چه زد انقلابی این فرمایش رسول الله گوش کن مؤمنا کافی شیخ کلینی جلد چار صفحه دوازده قال رسول الله محمد المصطفى صلى الله عليه و آله و سلم المؤمن ياكل بشهوه اهله مومن بلفل خوراکی و آشامیدنی حلالش به خواست و میل همسر گرامیش مادر بچه و المنافق یکلو اهلهو به شهواتی منافق بلفل تو بحث خانه و خانواده کیه؟ او شوار قد یک دنده لجباس یا بابای قد یک دنده لجباس تو خوردنیای حلال، آشامیدنی حلال میگه الا همین و لا غیر. بابا جون آشامیدنی حلال، خوراکیای حلال، خدا دیگه الا الا نکرده گفته این خوراکیای حلال مال شما مؤمنین و مؤمناته. خلو مما فی الارض حلالا طیبا. یه قید که برده دیگه. حالا هر کسی یه سلیقه‌ای داره، یه میلی داره. خب یکم همراهی کن به خانم و خانواده. خان و خانواده محیط مسالمت آمیزه زیست مسالمت آمیزه تو بحث محیط شناسی یا اکولوژی، از حیث اکوسیستم حیاتی همه باید هوادار هم باشن نه هرکی ساز خودشی بزنه دنبال فرضی خودش را بیفته. این خانواده میشه همه جنگ و نزاع. حتی سر خوراکی های مطالب جزئی اینجا مؤمن منا شما شوهر آقل پدر آقل راحت تری. اینم یاتمون فرمایش رسول الله کافی جلد چهار صفحه دوازده المؤمنو یکلو به شهوت اهلیهی میلو خواست شعری ها خوراکی آشامیدنی حلال طیب و المنافقو یکلو اهلوهو به خدا یا اهل مجلس ما را اهل بهشت قرار بده ایشان و نسلشون رو طیبه قرار بده دیدگان و قلوبشون رو به جمال و قلب نورانی مولا صاحب زمان منور بگردان حسن عاقبت به همگیشون کرامت بفرما امام راحل را با انبیا و مرسلین محشور بدار رهبر معزم را محفوظ بدار انبات را ببخش و بیامرز شهده را با شهده کربلا محشور کن این گفت و شنیدها را به و فضلت قبول بفرمو صلوات بر محمد و آل محمد